ای که در کوی خرابات مقامی داری جمع وقت خود یار دست به جامی داری ای که در کوی خرابات مقامی داری جمع وقت خود یار دست به جامی داری ای که بازل فروخ یار گذاری شب و رو فرصتت با که خوش صبحی و شام می‌داری ای سبا سوختگان بر سر راه منتظرند گر آن یار سفر کرده پیام می‌داری خال سرسبز تو خوش دانه ای است ولی بر کنار چمنش رکه چه دامی داری بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوَم بشنو ای اگر اگرزان که مشا می چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود بیکنم شکر که بر جور دوام داری نام نیکر طلب از تو قریبی چه شود توی امروز در این شهر که نامی داری بس دعای سهرت مونس جان خافت بود تو که چون حافظ شب خیز غلامی داری